رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبئي وخاتب النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد ششو من جلسه هست از مرور بركتاب كتاب دكتور صالح سندی ششو من جلسه صفحه چلو خب ركزه دومي دو هستين نظريات فلسفية بحث مباحث علمي و تجربی شد اون جزی که انا بهش در کار وجود خدا. بریم به اون نظریه های فلسفیشون. اون تئوریی ها و اون فلسفی که بهش صناد میکنن در نقض یگانگی الله به آفریدگاریش و, و پروردگاریش. ملف خدا حظش میکن. اینجا میگوید و من اهم متمثل که نظریت اولا تعظیم العقل. اولین چیزی که باید اینجا بهش بپردازیم، از اون دیدگاه‌های فلسفی شو که بشه سناد می‌کنن بحث تعظیم عقله عقل را به عنوان یک مستند قوی محکم جلوه میدن که اون عقل تصمیم میگیره حالا خدا باشه یا خدا نباشه. عقل ما هست که تصمیم میگیره خدا باید باشه یا خدا نباشه. خب حالا بریم ببینیم عقل میتونه خدا رو باور داشته باشه یا نه؟ حق با ایناست، یعنی خدایی وجود نداره، یعنی اون عقل اینچنین میگه که خدا نباید باشه. نزدیک به هفت میلیارد انسان روی کره زمینه، بیدینا چقدرن، بادینا چقدرن، اونایی که ادعا دارن خدایی وجود داره چقدر؟ اونایی که ادعا دارن خدا وجود نداره، آتیسما چقدر؟ کومیونیستا، اونایی که تنکار وجود خدا میکنن چقدر؟ خب نزدیک به دو میلیارد مسلمان داریم نزدیک به دو ملیار نسانانی و مسیحی داریم غیر از یهودش، غیر از مجوسیش، غیر از هندوس و بوداییش و کنفیسش و اله آخر از عدیانی که روی کره زمینه همه شون بر وجود خالق و افریدگار دارن خب همه اقلهایی ها اینا نادرستند همه این اقل اشتباه کردن یک اقل فقط درست گفته اقل اونم امثال سیوین هاکینگ و امثالش. عن نظرینو نظر خب حالا بریم ها رو با هم دیگه وزن کنیم عقل اینا عقل اینا یعنی بشر و این اد معدودی از اتیسم‌ها اولا تعظیم العقل و ان به استطاعت ه ان کل شی عقل میتونه همه رو درک بکنه منع حصر الموجودات فی المحسوسات خب موجودات رو هم خب با حصرش بکنیم در اون محسوسش یعنی تا اینکه بتونیم قضاوت بکنیم و هم في هذا مخالفون للعقل والحس يعني اونا میگن اون چیزی که محسوس نیست قابل اثبات نیست چون و با حس و حواس پنجگانه انسان قابل درک نیست پس نباید وجود داشته باشه ادعا ادعای اونا ای ذالعقل البشری اضعف من ان یحیط علما بكل شيء خب ما میدونیم دیگه عقل ما نمیتونه تسلط داشته باشه بر هر چیزی، یعنی از هر چیزی آگاهی داشته باشه از کنه هر چیزی با خبر باشه آیا به نظر شما عقل ما میتونه همه چیز رو بدونه؟ حالا بریم یک اثر این اینجا میاره از عبدالله بن عباس مهمه که آیا ببینیم این عقل ما واقعا گنجایش این رو داره که همه چیز رو درک بکنه یا نه میگره رو ابن ببطه رحمه الله ابن ببطه صاحب کتاب ایبانه هست یک از علمایی که در قرار زیسته و یک از کتاب های اعتقادی هست. قسم در رد بر معتزله و فلاسفه و اهل کلام. خب اینجا با اسناد خودش البته روایت میکنه تو اینکه اصل قصه رو اینجا میاره ان رجلا اتى عبدال... عبدالله الله ابن عباس رضی الله عنهما مرده ينزع عبد الله ابن عباس باذن اللهو فرزندش خودش خودشو ورده عبدالله الله بن عباس این فرزنده تو چهاره مشکل شده. فقاله مرده میگه به عبدالله بن عباس که رسول الله علیه و و ميگه لقد حيرت الخصومه عقله لقد حيرت الخصومه ميگه كه اين بحث جدال ميگه دچاره سرگردني و حيره شده يعني اين هيران شده بس كه بحث كادي. عقل خودش را از يعني عقلش متحير شده دوشار حيرات شده و أذهبت عقله حتی قلبش ازش گرفته یعنی درک دیگه نمیتونه بکنه نمیتونه حتی حرف طرف مقابل رو بفهمه و درک بکنه اصلا عقل و قلبش ازش گرفته شده از بس که بحث کرده گفتگو کرده بوده چرا شک و تردید شده و ذهبت به الکلفتو عن ربه. دیگه الان این شخصی که از بس که مثلا رفته و جدال کرده و گفتگو کرده دیگه این جدال ها سبب شده که این شخص دیگه دنبال خدا نباشه. دیگه تلاش هم نمیکنه کنه که به خدا برسه از بس که سرگردانه دیگه تلاش هم نمیکنه کنه این که به خدا برسه یعنی انگار که نیازی دیگه به خدا نداره بی خدا شده فقال عبدالله عبدالله بن عباس بهش میگه امدد به سرکه ابن اخی این فرزند نگام کن این فرزند برادرم میگه نگام کن ما سوا دل اون سیه چی میبینی قال فلان، فلانیه، سیاهی، فلانیه این شخصی که اونجا در توریگ نشست قال صادق و راست گفتی، فلانیه قال فمل خیال من خلفه. چی چیزی به نظر تو در ذهن و خیالش داره میپروانانه تو ذهنش چیه؟ چی داره تو دلش میگذره؟ پشت پرده ذهن این شخص چیه؟ قاله لا نمیدونم شخص شخصو میشنازم ولی چی تدولش میگذره نمیدونم قال عبدالله یا ابن اخی فکما جعل الله لابصار العيون حدا محدودا من دونها حجابا مستورا ای فرزنده برادرم همونطور که الله جل و الله چشمارا قرار داده که یک زاویه را ببینه یک چیزی را ببینه و چیزهایی را پشت اون پرده نبینه یعنی یک چیزی را میبینه و پشت اون چیز را دیگه نمیتونه ببینه که چی داره می‌گذره مثلا تو ذهنت را میبینه ولی تو ذهنش دیگه نمیتونه بخونه که چی داره می‌گذره میگه فكذا لك جعل الابصار القلوب همونطور که ما چشم بینایی داریم چشم بصیرت داریم قلب داریم که باهاش میتونیم بفهمیم درک بکنیم غایتا لا یجابزا همونطور که چشم ما یک محدوده داره می‌بینه چشم دل ما چشم ما قلب دل ما هم یه چیزی را میتونه درک بکنه که محدوده دیگه پشت اون چیز دیگه انسان نمیتونه درک بکنه یعنی بلفرض یک سلول بدن ما بریم تحقیق بکنیم میتونیم تا مقداری از اون کروموزوم از اون DNA اوارنه ای شو بفهمیم ولی دیگه فراتر از اون که چطوری مثلا اون جنمن در اون DNA اوارنه ای زخیره شده و از چی تشکیل شده و از چه پروتئینی، از چه فلانی و چطور تشکیل میشه و این هیچکس نمیدونه نمیتونه هم به اون قضیه برسه یعنی این قدر ذهن انسان ضعیفه درکش و حدودا لا این محدوده‌ای برای فکر ما خدا قرار داده که نمیتونیم دیگه از اون محدوده ما गुजर بکنیم قال فرد الله علیه غار عقله اون عقل حیرت گشته اون شخص اون سیاهی و تیریگی که جلو چشاش گرفته بود از چک و شبه میگه که از جلو چشش برداشته شد عقلش بهش برگشت اون جوونه و انتهه عن المسئله تو عماله دیگه دست از اون سال پرسیدن ها از اون چیزی که بهش مربوط نیست دیگه دست کشید و نظرفی ملای فعودی باید نگاه کردن و سال پرسیدن از اون چیزی که به دردش نمیخوره اصلاً ربطی هم بهش نداره و اتفکر رو فیما ما یو حیره و خصوصا فکر کردن در اون چیزی که دوچار حیرت رو سرگردونیش میشه دیگه دست کشید اون جوانه خب انسان باید قدر خودش رو بدونه ما انسان ها یک محدودهی داریم یعنی یک مقداری رو میتونیم ببینیم و یک مقداری رو میتونیم درک بکنیم یک مقداری محدودی چون توان خودمون توان محدودیه خیلی چیزا حالا ان شاء ها خواهد اومد خیلی چیزها رو انسان باید مقرب با اون باشه از ضعف خودش چون اگر خودش رو اون قد بدونه که میتونه هر چیز رو درک بکنه و هر چیز رو ببینه این مورد تمسخر واقع میشه مثلا یک شخصی جادوگرم یاد از امام البانی رحمه الله بهش میگه که میگه من هر چیزی از غیب میدونم من همه چیز از همه چیز باخبرم مطلع گفت خوب خب بیا با هم دیگه بحث بکنیم بعد اونجا دیگه بهش میگه خب بحث چی بکنیم میگه خب تو که گفتی همه چیز من میدونم تو که همه چیز میدونی پس میدونی که من دارم میخوام بحث چی وارد بکنم میگه که مناظره تمام شد بفرما تو که ادعای این را داشتی تو که باید میفهمیدی تو ذهن من چی میگذره پس انسان محدوده محدوده و درکش و اطلاعاتش محدوده و كذلك الحس فانه محدود هر حواسی حواسی که الله بهمون داده محدوده حس بینایی و چشایی و همشون محدوده اذ ليس كل الموجودات محصوره في یعنی هر موجودی را با اون حواسه پنجگانه که خدا بهمون داده نمیتونیم درک بکنیم فنحن نسلم ان المحسوس موجود ما تسلیم این بر اینکه اون محسوس موجوده. لكن ما دلیلو علیه انه غیر المحسوسی غیر موجود. اون چیزی که محسوس نیست. چه دلیلی داریم بر نفیش، بر انکارش؟ فکر. عقل. فهم. چطور ما میخوام این فکر و فهم را انکارش بکنیم؟ میگه لمسش کردیم. میگه بوش چشیدیم. میگه صدا شنیدیم. میگه با چش دیدیم. و با هیچ کدوم از حواس پنجگانه اون فکره. فکره ما پرورش پیدا میکنه، داره ایجاد میشه، نمیتونه کسی لمسش بکنه. خب چطور ما این غیر محسوس را قبول کردیم؟ غیر محسوس، پس محسوسو را مسلمان، همه تسلیم ونیم. ولی اون غیر محسوس را نمیتونیم این کار بکنیم. زعیفتر از این احساسایی که ما داریم، حواس پنجگانه که ما داریم، زعيف ترى أنك معيار برموجودات باشه كمحسوس شغير محسوس غير محسوس شغير ما يدل على ذلك وانك دليل بان إنقاذي هاس أن الحس قد يخون صاحبه حس إنسان شهد إنسان فريب بده جوتور نقول قد يظهر له الأشياء على غير وجه شهد شيء هيرا غير وجه حقيقيش شب إنسان ما يون ظاهر بو كونه ولذلك تأمل فيما تراه بعينيك في الطريق وقت الظاهرة وقت الزور نقول روح بجد كون سرابي كتومي بني أنا ستبصروا والبصر هم الحواس ما أن بوتشش مجنيني بني وتشش ما قبيترين حسي كخضابه من هذا ميجون سراب رآبي يبنا وهو سراب النهاية حقيقة لحقيقة هذا روم سراب سراب بغرم يبنا إن آب آبي آب آبيس تشش قول الدات فريب الدات وكذلك القلم الذي يوضع في كأس الماء فإنه يرى مكسورا ولا ينظر قلمه آه قلمه بزاته لي ونآبي بذس اون پشت لیوان نگاه اون آب کن اون قلم انگار که شکسته هست تصوید که قلم سالم تو آب لیوان تو آب انداختی چرا آن چشمت اون قلمه رو اون بزرگ می‌بینه و اون قلمو شکسته میبینه انگار که یک وقتی یه قسمتش بیرون از آب قسمتی توی آب باشه انگار شکسته هست ولی نش... نشکسته فالحسو اذن لا یم بغیان یعتمد عليه ذاك کل اعتماد پس نباید أعتماد كامل بهم حواسف هم جوانا من داشت واجه إن ششمه قول من يربع وليوربع الملاحد على انفسهم فهم ملحده يكام بخدش راح كنا حسة ششم يك مسالي بود برين قضية خلال از احاسيس هست انسانو فريب نده إن العقل والحس لا يمكن عند العقل السليم أن يفسر بهما كل شيء إن العقل والحس عقل إنسان فهم إنسان وحس إنسان نميشه إنسان با اون هر ظاهر هر مظهر یا هر چیزی را با اون تفسیر کرد هر چیزی را انسان بیاد در مقابلش قضاوت بکنه و ان یود را که اغوار کلشی هم کنه هر چیزی را بخواد با اون عقل و حس خودش بخواد بیابه نمیتونه و ان علی علا کلشی بخواد حک بکنن بر هر چیزی مثل یک آهنی مثلا آب تلا زده باشه تو چطور میخوای با چشمت یا با گوشت یا با دستت میخوای حکم بکنی که این تلا نیست آهنی که آبتلا بهش زدن تو چطور میخوایید حکم بکنی؟ ظاهرش میده تلا چون آبتلا بهش زدن کجا میتونه روش غذابت بکنی وقتی که بری آهن رو با بهش بچسبونی اون جذب آهن رو باشه این تقلیبی، این تلا نبود، این آهن بود و همینطور چیز، همین چیزهای دیگه یعنی مجرد یک حس پنجگانه نمیتونه قضاوت بکنه با بر اون چیز که او حقیقت یا حقیقت نیست فهذه الروح الاتی هی اقرب ایلیکم من کلی شی مثلا به عنوان مثلا روح انسان که در تن انسانه مرده ای را ببین و زنده ای را ببین این روح نداره این روح داره دار عجز العقل و الحس عن معرفت حقیقتها عقل و حس انسان از شناخت حقیقت این روح آجزه کمای عجزانی عن معرفتی حقیقت العقل نفسه همونطور که آجزه حقیقت عقل این فهم چطوره؟ آیا دل و قلب تأثیر داره در فهم یا نه؟ یا فقط اون چیزی هست که در ذهن و در, ع... در مغز میگذاره؟ یا ارتباط بین مغز و قلب هم هست یا نه؟ کنه اون فهم و درک چطور صورت میگیره؟ و قل مثل ذلك فی حقیقت راه همیتونم بگو در خواب ها و الاحلام کابوسی که تو میبینی و حقیقت الجاذبیه و قانون جاذبیتی که ما داریم الى آخر یعنی اون مسائل دیگر که وجود داره که محسوس نیستن خصوصا قانون جاذبه مثلا میگم زمین برای خودش جاذبیتی داره خب این قانون جاذبیت ها چجوری نمیخوام صحبت بشرف کنیم در صورتی که با چش دیده نمیشه فلا يستطيع ملحد انكار هذه الأشياء هذه الأشياء لا يمكنهم ملحد انكار بكنام مثل قانون الجاذبية انكار بكنام كيف يمكن انكار بكنام إنجا قشنك من اندازم جاسب زعيم مش ميت باين ولكن هميرو كريموه ببر ومرخ ببر قضية روخ نمي ده فلا يستطيع ملحد انكار هذه الأشياء مع عجز, عجز عقله وحس عن معرفته كنهي ها عاجز منده أو عاجز عقله حس اون شخص ملحد از اینکه درک بکنه حقیقت و کنه این قانون جاذبیت و این قضیه روح. ولی با وجود داره این کارش میکنه. یعنی اثباتش میکنه از این طرفی قانون جاذبیات رو قبول داره. ولی چی رو قبول داره؟ اون چیزی که ندیده. چطور اینجا تو این چیزی که ندیده رو قبول داری؟ با که دیده نشد. با عقل نمیتونی تو ثابتش یعنی اون یع این چیزی که داره جذب میکنه چطور داره جذب میکنه چی هست داره میکشه به طرف پایین با چی داره میکشه به طرف پایین نخی که نیست تناوی که نیست چیزی که به این بسته نشده هوا که نیست شعایی از نور که هم نیست چی داره میکشه پایین چی سبب شد که این جذب زمین بشه نور نیست که شاها نیست پرتوهای از پرتوهای مغناطسی یا هر چیزی میخوای تعبیرش بکنیم چطور میخوای ثابتش بکنیم چطور این قضیه وجود داره میاد اینلا که بخوایی بری چهار تا نظریه بدی و تئوری و فیزیکدان و فلان کس و فلان کس و هنشتن و, و فلان اینچینیم حرفی زده بیا این قانون رو ثابت بکنیم لیکن با حس پنجگانه یا با مجرد عقل بخوای این قضیه را ثابت بکنی نمیتونی چون قابل رویت نیست چون هیچ هیچکس ندیده چون جذب شد تو گفتی قانون جذب وجود داره نه چون دیدی نه چون حسش کردی با دستت با حس لمست با حس گوشت یا با حس بینایی یا با حس چشایی یا با احساسای پنجگانه یا با عقل خودت چطور میخوای با عقل خودت این قضیه را اثبات بکنی حق او است اینکه حقیقت این نوع صورت گرفتن جذب را درک بکنه نوع جذنه که جاذبه نوع این جاذبه چطور داره جذب ای میشه یعنی چرا داره کشیده میشه پایین با چه چی چیزی این نیروه نیروی جاذبه چطور ایجاد میشه اذن اذا تحذلق الملحد اگر اومد لفظت ام ملحد، چرا که بدرو گفتن و چرت و پرت گفتن فقال بما ان لا نرى الله اذا هو غير موجود چون خدا رو نمیبینی پس خدا وجود نداره چی جوابش بدیم چون خدا رو با حس پنجگانه نمیبینی یعنی درکش نمی کنی نه لمسش کردیم نه صداش رو شنیدیم نه نه چشیدیم چیزی ازش خب چون با اون احساسای پنجگانه ما قابل لمس نیست قابل درک نیست پس در واقع چه موجودی امنس و هذی مکابره طول العقل والحس این یک نظاه با عقله یعنی انگار که شخص اومده به نبرده با عقل و حس انسان چطور عقل و حس مرا اینا بیارزش قرار دادن یعنی گفتم همه ابتدای بحثم هفت میلیارد نزید به هشت میلیارد انسان رویز کره زمینه این همه انسان دعای اثبات وجود خدا دارن یعنی خدا را قبول دارن با تفاوتی در قبله هاشون و در دیانتاشون. خدا را قبول دارن. همه ای اینها بی همه اینها بی شعورن ببخشید من از این نفس استفاده میکنم ولی خب اینها مخاطبین خودشون کل ادیان رو زیر سوال میبرن چهار تا آدمی به اسم فرهیخته دانشگاهی فیلسوف اومدن بنبرد با دیانت ها هر دیانت که برای زمینه خب این مقابله است این مبارزه با عقل اومدن به مبارزه با عقل اینا ینی با اون لفظ زدن و چرت گفتنش لان الا لو اعتمد قاعده او فی المجال العلمي الی يتبجح به این با این قاعده ای که داره شادمانی میکنه با اون قاعده داره شادی میکنه خصوصا تو بحث الوی یعنی اومده بحث علمی رو یدک میکشه بحث فلسفه رو یادت میکشه برای انکار وجود خدا فانه ستسقط جمیع اسس العلم التجریبی من اصلها با این قانون تمامی اون قانون های علمی که وجود داره از میره یعنی قوانینی که ما در علوم تجربی داریم خوصا علم فیزیک علم شیمی هم همین دو خب کل اون قوانینی از میره مثل قانون جاذبه که من مثال زده مععن الملحده یزم مععنه یعتمده على نظریات العلمیه اون ادعا داره که استنادش نظریات علمیه، تهوری های علمیه خب در صورتی که اینم این تئوری علمی تئوری جاذبه است قابل رؤیت نیست هیچ کس ندیده هیچ کس ندیده که چطور داره این جذب رخ میده هیچ کس این جاذبه رو ندیده شما میگه باید دیده بشه تا ما ثابت بکنیم شما میگی با حسابات ببینیم تا ثابت بکنیم خدا رو باید ببینیم تا ثابت بکنیم چون ندیدیم پس نمیتونیم ثابت بکنیم خب جاذبه کار بکنیم چون ندیدیم چرا این کار نمیکنید فلا احدا من العلماء را الجاذبیه هیچ که یک علماء قانون این رو ندیدن ولا احدا من هم را الالکترون هیچ کدوم از این فیزیک و شیمی الکترون و پروتون و نوترون رو ندیدن که فقط در قالب تئوری و نظریه دارن نظریه پردازی میکنن که اون هر سلولی هسته داره و هستهی نمیدونم اون اتم نمیدونم برای خودش پروتونی داره و نوترونی داره و در یک مداری دارن حرکت میکنن و یک حرکت مغناطیسی هست و یک و ایلی آخر اون چیزی که ما خوندیم تو فیزیک ولی را الافیر همچنانم موجاتی که از نور از های نوری که در فضا هست مثلا شما با چشم مجرد میتونی تشخیص بدید این نور مابره بنفشه یا مادون قرمز چطور میتونی تشخیص بدید چطور می بفهمیم که مثلاً بلفرز اینجا اون اوزون پاره شده و نوری از مواره بنفش داره تو فضا منتشر میشه که سرطان, سرطان پوست میشه و الی آخر با چی دیده شد؟ از کجا فهمیدن؟ از آثارش؟ نه خودش چطور می بینن خودش چطور دیده میشه؟ اینو بیاد ثابت بکنید چطور می ثابت بکنید؟ خصوصا گفتم موجات نور و لا احد منهم را اطبیعت الموجیت للضوء اون امواج نور کسی ندیده با چشم خودش چطور این نور انتقال پیدا میکنه از اتوم و اتوم دیگر تا اینکه که به ما میرسه نور چراغ از بالا میاد به ما میرسه چطور؟ ولا لا را اطبیعت هیچ کدوم از ما ذرات ریز اتمو ندیدیم ولا ولا ولا الى آخر. هیچ کس از اون نه اون الکترون نه اون اتم نه اون پروتون و نوترون هیچ کس از این ذرات تو اون حقیقت و اون مداری که داره اون پروتون دروش می‌چرخه و اون هستی که در اون وجود داره هیچ کس ندیده فقط یک قانون یک تئوری فی سلسله طويله من الحقائق العلميه انه حقائق علمیه ولی که با دیده نمیشه ثابت یا ثابت نیست؟ ثابت فعدم رؤیتنا الله تبارک و تعالی وعدم ادراکنا لحقیقتی لا یعنی عدم وجوده بس خداوندم چون ما نمیبینیمش دلیل بر عدم وجودش نیست چون ما اتم و پروتونو نمیبینیم دلیل بر عدم وجودش نیست بلکه وجود داره بلکه وجود داره و یکف العقول ان تستدل این عقل میگه عقل میگه نمیشه گفت چون چش نمیبینه وجود نداره عقل میگه اینها با این سفزت بازی و با این چرندیاتشون میخوان بگن که نه نه چون با چش نمیبینیم نه باشه نه اینطوری نیست و یکف العقول ان تستدل علی وجوده به اثار صنعه کافیه که ما استدلال بکنیم بر آفریدگار با اون آفرینشش این آفرینش دلیل بر آفریدگاره و ما فی فیه من نظام و اتقان و اتقان خصوصا از اون منظومهی که میبینیم از اون ترتیب و از اون از شگفتی خلق آفرینش الهی کافیه که دلالت بر آفریدگاری الله جل و علا بده این نظم و ترتیبی که در مخلوقات وجود دارد در جسم انسان در منظومه شمسی اما التطلع الى ذاتی و صفاتی تبارک و تعالی فهذا ما لا سبيل للعقل ای. اما اینکه ما بيان درباره خود کنه الله جل وعلا ازار نظر بفهمیم که چطور خود خدا خود خدا, خدا, خدا چیه چگونه است هیچ کس نمیتونه بهش برسه هیچ کس نتونسته اصلا ایمان یعنی همین ایمان اینکه چیزی ندیدی دلیلی بر اون گذاشته شده با توجه به اون دلیله او رو قبول داشته باشی تو این امتحان میشی وگرنه معنا نداش تکلیف ما معنا نداش عقل ما عقلو به من داده که تصمیم بگیریم رو این قضیه تا اینکه با فکر و درگم با الله برسیم عقل برای این قرار داده شده عقلو الله بهمون به داده تا اینکه میزانی بشه برای اینکه من با میمون یکی نشم من با اسب و الاغ یکی نشم الاغه حیونه چهار دست پا داره منم دارم چش داره, داره منم دارم بلکه من یه چیزی دارم اون نداره اون چیز عقله. من به من عقل و درکی داره که اون شگفتی آفرینش رو ببینه ولی اون علاقم نمیتونه اون شگفتی آفرینش رو ببینه نمیتونه کتاب مطالعه بکنه بخونه ولی من میتونم بفهمم کلماتو سر هم بکنم جمله بسازم ال بسازم تولید کنم ماشین بسازم غیر بلکه اون علاقی نمیتونه حشورش نداره درکش نداره ولی من درکشو دارم پس این ابزار وسیله برای رسیدن به الله و اذا لم يتمكن عالم من علماء الطبيعه ان يعرف كل شيء عن حقيقه ذبابه واحده فكيف يرى من يعرف كنه ذات الفاعل العظيم تبارك وتعالى علماء که در حسن زیستشناسی علمای که پرداختن به حشرات و حیوانات زیستشناسان اگر نتونستن در مورد یک مگس و پشه تحقیق بکنن این چشمش چقدر سلول داره چطور با این چشم خودش میبینه و با این حس چششش چه نورهایی را میتونه درک بکنه چه نوری میمیت می چه نوری نمیتونه ببینه چون چشم‌های ها متفاوته در رؤیتشون بعضی از حیوانات چش دارن ولی نمیبینن بعضی از حیوانات چش دارن مدون قرمز میبینن بعضی‌ها ما برای بنفش میبینن تفاوت داره چشم اولاق با چشم خرس خیلی تفاوت داره فقط برید تو گوگل بنویسید تفاوتش بهتون میره میاد یکی شما دون قرمز میره، یکی ما باورا یه بنافشو میبینم هر دو تا چشم دارن خروص ملاقه ولی که چشماش ها مختلفه متفاوت الان ربطی, ندارم، ربطی نمیدم به اون مساعده که تو قرآن و سنت اشاره شده به این قضیه اینو فقط به زیستناسا محولش میکنیم چون تو قرآن و سنت اشاره شده به این قضیه ولی خب اون چیزی که برای ما مهمه این که زیستناسا مقرم این قضیه که چش ها متفاوته خب ولی که چطور این قضیه داره رخ میده؟ این تحلیله چطور رخ میده؟ این تیفه از نور، مواره بنافع، چطور این چشم درکش میکنه و سپس در مغز خودش تحلیلش میکنه؟ چطور چطور میاد اون تیفه نور را در جلوب خودش و خصوصا اون سیستمی که داره یعنی سیستم چشم؟ الله خصوص اینجا منسان مگس رو میزنه چطور با اون چشم خودش میتونه با این حس خودش چطور دور بر خودش رو ببینه اندازه ها به بسنجه چقدر پرش بکنه به کجا برسه چطور فرود بیاد فالله عجیب است سنع و آفری آفری الله جل و علا واقعا عجیبه والله بچه درید شما نگاه بکنید هنی چقدر علماء نشستن روی هاپیما ازوار نظر کردن که با چه سرعتی اون پرهاش و اون چرخاش باید بچرخه با چه سرعتی باد بره و چطور باید اون بالاش باز بشه و که بتونه یا هلیکوپتر مثلا چقدر باید اون ها پرهاش بچرخه که آب بتونه پرواز بکنه و بعد چگونه با چه سرعتی باید بیاد پایین تا اینکه که بدون این که آسیب ببینه روزایی این بشینه فلی کنم پشترانوگا چطور بال میزنه سریع پرواز میکنه بره با وفق بعد سریع میاد پایین چه چشمی، چه چش دیدی این داره که میتونه مثلا به سنجک آه اینجا چطور فرود بیاد شما دقت کرده تو این؟ الله عجیبه، یک پشه ولی کل این قوانینی که تو دانشگاه ها میشه برای اختراع یک هواپیما، یک هلیکوپتر، کل اون دانشمند هزاران دانشمند و تکنیسیان و مکانیک میان یک موتوری را برای اون هواپیما اختراع رو. چندین سالیان ساله دارن کار میکنن تو دانشگاه بررسی میکنن شتاب اون پره ها و شتاب نبیدونند و سرعت اون هواپیمایه و اون جرم و حجمش و چطور آقا این بره بالا ولی خبه الله جلاله یک منگه سکوچی کل این سیستم و نظام قرار داده میتونه قشن درک بکنه بدونه چطور کجا فرود بیاد با چه سرعتی بپره و پرش کنه و با چه سرعتی فرود بیاد و این عجیبه از آفرینشه الله و نبوده. بی قانون نیست قانون داره برای خودش الله حسیه در آفرینیشش متعالی نزیر نداره در آفرینیشش اقرار داریم به الله جل جلاله اقرار داریم به کوچیکیمون و ضعفمون و به اینکه صفاشش را اون چه حق لایقش هست به جان فاحتجاب الله عز وجل خلقی على غير و جل عن خلقه نیست دلیلا علی انه غیر موجود سبحانه چون الله جل و علا خودش را از ما قایم کرده نشونمون نداده خودش رو دلیلی نمیشه بر اینکه الله را این کار بکنی دلیل بر عدم وجودش نیست الله سبحانه و متعال والا فل هل يقول الملحد عن رجلا غاب والده قبل ولادته فلم يلقه في حياته هل يقول انه لا اب له یک شخصی یتیم به دنیا بیاد به دنیا بیاد پدرش فوت شده چون پدرش رو ندیده میتونه کار بکنه که بی پدره لانه لم و ولم يشاهدك چون ملاقات باش نکرده و ندیدتش بگی من بی پدرم چون پدر نداشتم پدرم نگیه الحقيقه مره اخرى ان المنهج الالحادي هش وانكابر الملحد بره دیگه بازم میگیم اینکه منهج الالحادي یک منهج پوشالی و پوچه هر چقدر بخواد مکابره و مناظره بکنه با ملحد هر چقدر بخواد حرف حرفشو بگی که حرف من علمیه مکابره است فقط مغالطه اندازی میکنه فقط جداله و بحث واقعیت نداره حقیقت نداره حرفش خلاف واقعیت و حقیقت و من الخلال عندهم في هذه القضیه انهم لما حصلوا المدركات بالحس ردوا الاخبار الصادقه التي جاءت من طريق من اثبتت البراهين اليقينيه صدقه صدقهم از جمله خلل منهجی که اينها دارن تو اين قضيه تو همین بحث الحاد سناد کردم به بحث محسوسات این خلل منهجی تونی قضیه وجود داره خب اینا گفتن که اون چیزی که قابل درک محسوس هست و قابل درک را میتونی ثابت،, ثابت بکنیم اون چیزی که غیر محسوسه و درک نمیشه با حواسه پنجگانه قابلیت اثبات رو نداره خاطر همین اخباری صادقانه به مرسیده. از پیغمبران الهی را این کار کردن اخبار صادقی که پیغمبران الهی مثل اخباری که از موسی آمده از ایسا آمده از محمد مصفا صاحب صاحب دیگه پیغمبران آمده با وجود که ماجزاتی بوده دلایل و براهینی بوده بر صدق اونها بر این که حرف و سخن اونها درسته مثل مثلا ماجزاتی که موسی داده شده یا عیسی داده شده مثلا عیسی وقتی که اومد نابینا رو بینا می کرد کر و نوا می و موسا دیدن با چشم خودشون دریا رو زد با عصا خب، یا عصاشو انداخت شد اجده ماری شد دست رو تو گریبا میکنه نشونه فرام میده پر از نور میشه خب اینا معجزات بود خب اینا دلالت داشتن بر صدق اون اخباری که به ما گفتن ولی که اینا مکابره میکنن یعنی اینا عقل خودشون را از اون بروهان پیغمبران قبیتر میبینن و هذه مکابره لما یعلمه کل العقله من ان العلوم تدرکو بالحس و تدرکو بالعقل و تدرکو ایضا بالاخبار الصادقه اینا وقتی که میگن حقیقت و واقعیت فقط در محسوسات خلاص میشه اون چیزی که ما میتونیم درکش بکنیم اینا دارن با این حرفشون اون علومی که به همون رسیده حقیقت علومی که به ما رسید را این کار میکنن چون علوم با طرق مختلفی به ما رسیده علوم یا اینکه با عقل یا اینکه با درکی که الله بهمون به داده با اون حواس پنجگانه ما میتونیم بهش برسیم و درکش بکنیم یعنی ما میتونیم بفهمیم مثلا به حس چشایی مثلا آب دریا شوره حسه حس یا اینکه با حس ما میتونیم به نتیجه برسیم و یا اینکه با عقلمون سه قانون جاذبه مثلا اثبات بکنیم با اون فرمول ها و با اون آثار اون جاذبه بخوام اصل اون با چش نمیتونیم اون جذب را ببینیم یعنی چطور داره جذب میشیم قلمه به زمین نمیتونیم ببینیم واچش ولی که عقل ما داره میگه این داره جذب میشه حالا بعد بیام تحلیلش بکنیم و الی آخر و یا اینکه حالا این علوم ها که بهمون رسیده یا اینکه با اخبار صادق اخبار صادقانه از اون علم بهمون اطلاع داده بشه به ما گفته بشه خب این سه تا روش داریم برای اثبات یک چیز اثبات یک چیز اونا میگن اثبات یک چیز فقط با حواس پنجگانه است ما میگیم نه اثبات یک چیز میتونه با حواس پنجگانه باشه میتونه با درک و فهم باشه و میتونه با اخبار صادق باشه والعجیب انهم في هذا متناقضه خصوصا در مسئله سوم علمی که اون هست اون اخبار صادقی که ما میتونیم با چیزی ثابت بکنیم عجیبه این قضیه تو اینها متناقضن در این قضیه یعنی بعضیشو قبول دارن بعضیشو قبول ندارن مثل همون قضیه بحث قانون جاذبه کجا ما سازیدیم اینجا هم یکی از همون مسائل لانه هم یجحدون الاخبار ويقبلونها في هن واحد اخباری را که بهشون گفته شده قبول دارن یه سری اخبار رو یک چیزی ارسطو گفته، سقرات گفته. قبول دارن با وجودی که مجرد یک خبر اطلاعی از یک فیلسوفی، یک اندیشمند و دانشمنده. ولی که اخبار دیگر که را گفتن قبول ندارن. یعنی اینا کل تناقض در قبولیت اخبار. در یک آن در همون لحظه فحینما يناقش احد و فيستدل به نظریت ما وقتی که یکی از اینا بحث میشه در یک نظریه مثلا باشون گفتگو میکنی فاینا یقال هل طبقتها و ادركتها طبقته بنفسك؟ اصلا تو این قانونی که میگه قانون نیوتون، قانون فلان آیا تو خودت رفتی کشفش کردی؟ یا اینکه با توجه به نیوتون یا با توجه به انیشتنی که این قاعده رو گفته تو ثابتش میکنی؟ پس یه قول لا و این نمقام بی هفلان. نه این فلانی اومده این قضیه را کشف کرده قضیه الکتریسیته، قضیه جاذبه فلانی اومده کشفش کرده. من کشفش نکردم. و نسه علیه علیه فلان کس گفته تو کتابش و هاگی مناقضتون لمنهجه المزعوم این نقضه اون منهجشه. منهجه چی؟ میگه اخبار را نباید بپذیریم. کسی به من یعنی حرفی یک مسئله اومد خبر داد ازش بپذیریم. خب خب تو اخبار پیغمبران را انکار کردی میگه که قابل قبول نیست. بس چرا اینجا اخبار این یا این دانشمندان اراق داره قبول میکنین اینا هم خبره که اینا هم که با چشم خودن خودشو ندیدن که کی دیده اون تیفهای نوری یا اون جذبه ای که سبب میشه قانون جاذبه رخ بده و الکتریسیته وقر و نوع انتقالشو کی دیده اینا رو پس چرا اینا رو داره قبول میکنین و هذه مناقضه لمنهج المزعوم منهجی که داره ادعا میکنه این داره نقضش میکنه حيث وصل إلى ما يعتقد عن طريق تصديق الخبر وليس عن طريق الحس خدش فقط داري خبر نيوتن يا يغاز أنيشتين داري قبول ميكونه نديد باكش ما خدش طريق فقط حرفيك دونشمن ديرو يدك ميكشه خودش نديد إذن لم يعيب الملاحد على أهل الإيمان قبول الأخبار الغيب فإن أخبارهم إذا كانت تتحدث عن محسوسات فأخبار رسل الغيبية تتحدث عن محسوسات أيضا اذا لما يعيب الملاحده على ایمان چرا اینا میان اعتراضی میکنن برای اونا که مؤمنن خدا را قبول دارن خب ما اگر ایمان داریم با الله باور داریم با الله جل و اعلی چون پیغمبران اخبار صادقشون بهمون گفتن همون طور که خودش داره حرف نیوتن و حرف انیشتین رو داره یدک میکشه و قبول داره ما هم حرف اونا را قبول داریم این خبر اینم خبره ولی قابل قیاس با هم دیگه پیغمبر الهیه الهی داره جبرئیل برش وهمی کنه ولی این نه این یک قانونی یک طوری داره یک فرمولی داره داره یک نظریه پردازی میکنه در یک ماجره و جریانی که حادثه‌ای که داره رخ میده این حادثه جذب داره روخ میده میخواد نظریه پردازی میکنه با چه سرعتی میاد پایین و چطور اومده پایین و چی هست که او رو داره میکشه پایین باین اخبارهم اذا كانت يتحدثن مع محسوسات درباره محسوسات دارن قضاوت میکنن پیغمبران الهی هم دارن درباره محسوسات صحبت میکنن با محسوسه چه موقع این محسوس واقعی میشه لا که تحسه بعد الموت بعد ازی که ما ببینیم بهشت جهنم روز رستاخیز حق چیز غیر غیرممکنی نیست. دارن خبر میدن از اون چیزی که رخ خواهد داد، حشری که رخ میده، رستاخیزی که رخ میده، خدایی که دیده میشه، اونو دیده نمیشه. ولی که یک اخباری رو دارن بهمون به انتقال میدن میگن از اون جریانی که رخ خواهد داد، همونطور که شما دارید از یک جایی جریانی که داره رخ میده، داره خبر میده، اونم هم همینطور. همیشه. یک جریانی که رخ میده، دارن خبر میدن، این داره رخ میده، هم داره رخ میده. هست. روز رستاخیز هست مردی دوباره زنده میشی خود آماده کن همینطوریه اختیار بهت داده بشه اینو کتک بزنی مال اینو بخوری بعد حساب کتاب نشی رها بشی دزدی بکنی خوبه نتیجه الحاد اینه دوزدی چپابول بیناموسی بیغیرتی چون دینی دیگه وجود نداره حساب و کتابی وجود نداره اون اهل ایمان میگن نه حساب کتاب داره خود آماده کن، ظلم نکن، تحتی نکن، مال کسی رو نخون. این ایمانه. آقا چون فلان ملا دوزی کرد دلیل بر نقض دینی است. یا فلان عالمی فلان کسی دروغ گفت دلیل بر نقض دینی نیست. دین دیانته. دینیوری ما حساب کتابه. این که کاری که میکنی باید بدونی فردا روز حساب کتابی هست، که بازخواست میشه در مقابل اون این دینه بدیش کجاست کی گفته که نیست از کجا میدینه که نیست خبره این پیغمبر الهی داره خبر میده از اون واقعیتی که رو خواهد داد تو نمیتونی انکارش بکنی اگر بخوای اینو انکار بکنی باید قانون نیوتون و انیشتین و اینا هم غیرو همه رو باید انکار بکنی فاذا كانت که اخبارا وتلك اخبارا انا اخباره و انا فا اخبار فاخبار الرسول اول قبل اخبار پیغمبران اولاتر به او. تصدیق لقیام البراهین القطقیت و على صدق هم بخاطر اون برهان و دلیل قاطعی که بر بر و صدقشون وجود داره از محجزات مختلفی که داده شدن والخلاصه. خلاصه خدا سین حرف این سخنانی گفته شد ان منهج لحادي منهج متناقض منهج لحادي منهج متناقضی خوصا در این تا قاعده که گفته شد چون خدا را نمی بینیم نباید قبول بکنیم چون اینها اخباره پس نباید قبول بکنیم دوتا قاعده ای که الان مطرح شد گفتیم هر دوتا چرندیاتی بیش نیست که خودشون نقضش کردن و میکنن یکذب و شیعه و صدق و نظیره اخبار پیغمبران تقزیم میکنه ولی اخبار چهار تا دانشمند داره قبول میکنه چرا؟ فهو علی سبيل المثال یکذب و ان الله خلق آدم علیه السلام داره تقزیم میکنه که آدم با دستان الهی خلقت شده آفریده شده من طین از گلی آفریده شده آدم ثم تناسل البشر بعد از آدم بشر به وجود اومدن داره این کار میکنه اصل خلقت وجود آدم و بعد از اون فرزندانش لانه عنده غیب غیر محسوس چون عالم غیب بوده و کسی ندیده خب وفی مقابل هذا یصدق بان اصل الانسان خلیه وجدت قبل ملايين السنين ولی کیچي الان اون آدمو اصل خلقت انسان رو که از آدم به وجود اومده این کار میکنه یک آدمی بوده بعد از اون تولید نسل میشه خب اینو این کار میکنه ولی چی رو وار میکنه میگه که نه میلیون ها سال یک ذره ای بوده اون ذره تکامل یافته شده میمون بعد از اون میمون شده انسان خب اگر آدمو تو ندیدی داره این کارش میکنی خب سلول و ذره هم که تو ندیدی خب این هم باید انکار بکنی چرا این ذره و بعد اون سلول و بعد اون میمون و بعد اون انسانی که تبدیل شد از اومنی؟ چرا اینو قبول داری؟ که غیبه تو که ندید. چرا اینو قبول داری؟ ولی اینو قبول نداری. مدرکت چیه؟ از کجا به این نتیجه رسیدی؟ با اوجه که تناقضاتش ما در نظره داروی این گفتیم. 90 درصد مخلوقات، 90 درصد که 99 درصد مخلوقات راها کرده، اون... پدیده ی تکامر رو نمیاد روی حشرات تطبیق بوده که 80 درصد از کره زمین از اون موجوداتی که روی زمینه، غیر از اون حیوانات ده درصدش و غیر از الى آخر فقط اومده در مورد این گونه و آن هم انسان داره صحبت میکنه اون گونه هم که دیگه میاد میمون و مثال میزنه و چون تشابهاتی وجود داره خب تشابه اگر انسان با میمون در تشابه در بعضی از امراض خب با موش هم گفتیم وجه وجوه مشترکی داره بعضی از بیماری ها در انسان هست در موش هم هست خب چه وجه چرا چه وجهی متقایری هست یعنی چه چیزی مزیتی میده میمون بر موش میگه نمیدونم دونم شکله میگه قیافه است میگه پنج انگشت خب موش هم پنج انگشت داره اینا که دلیل نمیشه پس اینها مکاوره هست یعنی م... اینها عقل را خصوصا عقل بشری که خدا رو باور کرده اینها اون حقله را ناچیز شمردن اون عقله را دارن زیر سوال میبرن عقل ما را قبول ندارن عقل اون شخصی که باور به وجود خدا رو داره دارن زیر سوال میبرن یعنی انگار که فقط چهار تا آتیسم دارن دارن حقیقت را یافتن را و در کردن و بقیه همه بر گمراهین و بقیه همه, همه فرقی با حیبون ندارن نفهمن ببخشیدم دیدگاه اونها ای اینطوریه تحقیر همیزه ما تحقیر نمیکنیم کنیم دارن نمی کنی تحقیر میکنن رو. ثم تطورد من خلال الانتخاب الطبیعی مده مسام الفاز یک سلولی بعد اومده تکامل یافته و خودش انتخاب کرده که چگونه باشه و یک گونه برتر باشه معا انه هاده غیبون به نسبت و این هم غیبه یعنی چطور یک سلول بیاد مثلا در مقابل دیگر سلول ها یک گونه در مقابل دیگر گونه ها مثلا بیاد برتری بیابه و باقی بمونه بقیه گونه ها از بین بره لیکنه مقبول عنده لانه مستره الحادی پیشش این نظریه الحادیش این اساس این سلول و این گونه برایش یک نظریه بدیهی و طبیعی و قابل نقاش نیست چرا چون ملحده چون میخواد خدا را انکار بکنه چون میخواد خدا را انکار بکنه باید حرفش به با کورسی بکشونه و ذلک هم مردودن لانه مسروحی از قرآن و اونم چون پیغمبران گفتن باید مردود بشه چون این هفت میلیاردی که خدا پرستن چون اینها خدا را میپرستن نباید, خدا نباید خدا وجود داشته باشه چون اینها خدا قبول دارن خدا وجود داشته باشه فالمنهج اذا منهج متناقض منهج متناقض ليس له حاكم فقط چیزی که بر قلب دل اونها چیره شده حواس توای نفسه، اینا میخوان آزاد باشن اینا میخوان حواس باز باشن اینا میخوان شهوتشون و انگیزه حیوانیشون فقط تخیلیه بکنن تو مثل حیون هر کاری دلشو خواست انجام بدن ظلم بکنن ستم بکنن تصی بکنن مال اینونو بخورن هیچ قانونی بر اونها هیچ شریعتی و دیانتی بر این حاکم نباشه. خب این اولین مسئله که اینجا از نظرات فلسفی شد. بس اولین مسئله بحث عقل و دومی مسئله بحث شک. اول عقل و یدک کشیدن. گفتن یا عقل خدا را قبول ندار باها نداره که جوابشون دادیم. اما قاعده شکشون. قسمتی از این هم امشب میپردازیم بهش. بقیهشون انشالله میدازیم به پرداشت. قادشت چیه؟ الحقیقت ان الملحد تكوين مركب من الشکی و من تشتت الفکری ملحد موجود مركب از دو چیز یک شک و تردید و دیگری هم پریشانی فکری یک شخص پریشان یک شخص مسترب و متردد شک و تردید با پریشانی فکری با هم دیگه جمع شده و شک و لحمت الالحاد و صداد شک پاری از تن الحادها الحاد از شک درست شده و لعله اصلاق و وصف لحال الملحد هذر القصیده شاید صادق تری بس بر حال ملحد این قصیده باشه کلا این قصیده رو خواهیم خوند و این بحث را اینجا با این مطلب خاتمه میدیم تا انشاءالله بعد که فردا دامش بدیم خب وصف اون ملحد جیه تو لا علم این ولکن نیاتی تو اومدم, اومدم. ولکن میگه نمیدونم از کجا اومدم ولی اومدم اومدم ولی نمیدونم از کجا ولی اومدم ولقد ابصرت تو قدامی طریقا فمشيت تو راهی دیدم جلوه اون راه رو رفتم راه رو رفتم و راهمو دیدم راه دیدم رفتم و سعب قصا ایران این شئتو هادم عویتو خواستم این راه میدم و خواستم اونجا یه جای متوقف میشم راهی را دیدم راهی را پیمیودم و اون راه خواستم میپیمایم و خواستم متوقف میشم کیف جئت الان چطور دارم راه میپیمویم؟ چطور اومدم؟ کیف افسرد و طریقه چطور دیدم؟ یعنی اون راه رو چطور پیمودم؟ بعد چطور دیدم؟ لست و نمیدونم. رسیدم به یک جایی راه را پیمودم ولیکن این راه رو چطور رفتم نمیدونم. چطور این راه رو دیدم؟ نمیدونم. و طریقی ما طریقی اطویلونم قصیرون راه هم نمیدونم چه راهیه. طولانیه کوتاه، هل انا اصعد ام و, و فيه واغور درم بالا میرم سر یا سر و پایینیه دارم به عمق میرم یا فرود میام نمیدونم بالا میرم پایین میام انا السائر في الدرب ام الدرب يسير نمیدونم من دارم میرم یا راه داره میره من دارم تو این راه دارم میرم یا اون راه هم داره میره یعنی من متوقفم داره اون راه داره حرکت میکنه یا من دارم حرکت میکنم هم کلن و واقف و هر دو استعادیم. یعنی فقط داریم خیال پرورانی میکنیم. یعنی داریم فکر میکنیم. یعنی حرکت میکنیم. و ده روی اجری زمانم داره میره. لست و نمیدونم نمیدونم. زمین داره داره خودش میچرخه. منم دارم میچرخم. این راه هم داره میچرخه. دور زمین. این چرخش چیه؟ چطور داره میچرخه؟ من دارم چطور میچرخم؟ نمیدونم همه چیز نمیدونه، نمیدونه قبل از اصبحت انسانا سویه کنت محوان او محالا قبل از اینکه من این انسان بشم نبودم نبودم کنت محوان او محالا یا اینکه اصلا مستحیل بود ممکن نبود اصلا من باشم يعني یا وجود داشتم یا وجود نداشتم امترانی کنت و چیزی بودم نبودم یعنی من که به وجودم آمدم چیزی بودم که شدم یا چیزی نبودم شدم ال هذا اللغز حلون آیا این چیستانه معماه جوابی داره امس یاب ابدی یعنی اینکه این پاسخه تا ابد خواهد خواهد این هیچ کس جوابشم نخواهد یافت لست ادری نمیدونم ولی وله ماذا لست اد و چرا نمیدونم بازم لست ادری نمیدونم نمیدونم چرا؟ نگه چونم؟ نمیدونم چون نمیدونه؟ نمیدونه هیچی نمیدونه آخرشدی؟ نمیدونه کجا میخواد بره؟ نمیدونه چطور داره میره؟ نمیدونه چطور داره حرکت میکنه؟ چرا داره حرکت میکنه؟ داره با کجا میره؟ هیچی نمیدونه این چیه حیرت زدگی این چیه پریشانی. این چیه راه گم کردن؟ راهشو گم کرده. حقیقت واقعیت آفریمش خودش، خلق خودش رو فراموش کرده. نتیجه کار خودش هم بهش فکر نمیکنه. چه نتیجه داره این الحاد؟ چه بدبختی داره؟ چه بدبختی برمقام می میاره؟ خانواده را دیگه میکنه جامعه رو متلاشی میکنه عادل انصاف را از بین میبره حساب و کتاب و زمین رو از بین میبره انسان ها بی وجدان میشه بی خدا میشه بی محاسبه میشه کسی خودشو محاسبه نمیکنه چون محاسب کننده ای دیگه وجود نداره حساب حساب کننده ای وجود نداره حساب و کتابی و و خیزی وجود نداره همینطوری پوچ هیچ شک دیگه تردیده خودش رو با اون حیوان قیاس میگیره خودش رو در خودش رو با دیگر مخلوقات نمیبینه ولی که نه ولقد کرم نبنی آدم ولی ما خودم رو مکرم میبینیم عزیز میبینیم خانوادمون عزیز میبینیم ارحاممون عزیز میبینیم پدرمون مادرمون عزیز میبینیم جامعه منو عزیز میبینیم چشمون عزیز، گوشمون عزیزه دنبال درمانی شیم دنبال علاج شیم درد رنج ها رو میبینیم یتیبه باید به دادش برسیم فقیره باید به فریادش برسیم کمک مستقندیه دست اینو اونو گرفتنه دین این به یاد داده سله رحمه و بالوالدین احسانه وقتالله ما جانه حضل من الرحمه با رحمت با مردم بودن رحیم بودن پیغمبران اله چنین به ما گفته. بچه یهودیه با که دشمنی باش دارن میره سر بهشون میزنه غذا درست میکنه به یهودی میبره با اوجه که باش دشمنی میکنن بهمون یاد دادن خودت اگه غذا نداری اول همسایت بعد خودت الجارات اومد دار امنون آیشه براش خرما یکی بر زنی میاد با دو تا بچه خرما را صد دانه خرما داره بیشتر نداره بهشون میده ولی آخر نداره ولی که رحم میکنه با اون مادر مادرم یکی بین یکی به اون بعد مال خودش هم بعد دوباره نصف میکنه این دوتا بچهش رو میده بعد میگه ای آیش شگفت زده شدی از این جریان این مادر میگه میدونید شگفت تر از این چیه؟ اینکه الله این مادر رو به خاطر رحمتش بخشید بین این دوتا این مهربانی که داشت به خاطر مهربانیش به دو تا فرزندش. الله با اون مهربانیش اون مادر مهربان رو بخشید. دیر اینه به ما یاد داده تشویق کرده ما رو به بخشش تشویخ گرده ما رو به مهربانی مثال میزنه رسول الله صلی الله علیه به بحث بخشش الهی به اون زن زن بدکارهی بود ولی که میره از درون چاهی اول خودش می بعد میبینه یک سکتش لبه با رحمش به یک سگ میره آب رو توی اون کفشش میکنه بعد میاد بیرون بعد با اون سگ میده كون خدا راشناك كون رحمة بدلش نسبة مخلوق يومات الله جلّب على أورا بخشيت الله جل وعلا أورا بخشيت چقد بخشش خوبه چقد انسان حساب و كتاب بکنه خودش مهمه وهذه القاعدة قاعدة الشك و التشكيك عماد والإلحاد قاعدة الشك أساسه عمود ستون الحاده و هی التي یسع الملاحدت و جهدهم الى غرصها في نفوس الناشه ملحدین تلاش میکنن تلاششون بر اینه که توی دل جوان و نوجوان بکارن این شک و تردید ما اسهل ان تنقاد ها دهی نفوس جاهلت الیهن؟ بچه جوانه راحت گول میخوره فریب میخوره بعد انت تتمکن ها القاعده قاعدتو من نفوس این راحت میتونن بخورده اون بچه بدن تزریق بکنن این فکر الهادی با شک و تردید میتونن اون بچه رو گول بدن با چارتا انیمیشن و کارتون میتونن راحت فریب بدن اون بچه رو و لذلك فهم حریصون اشد الحرص على اینو في كل محفل بخاطر همین هر جا میرن میخوان تو دل اون جوونا ها بکارن این الهاد و این دنده بخاطر همین شما میبینید حالسمبل فرس ما خصون تو جریان های اخیر خصوصا تظاهرات که میشه یا مثلا شورش هایی که میشه حکومت هایی که برعللهشون قیام میشه از طرف خصوصا گروه های ملحد و بین می بینید شما اولین کاری که میکنن هجاب را بربیدارن. دین نمیخوام میخوام آزاد باشیم شعار از آزادی زن زندگی آزادی آزادی میخوا دختر آزادی میخوان می‌خواد امروز دوست پسر داشته باشه فردا دوست پسر دیگه می‌خواد آزاد باشه. بخت آزاد با یک پسری خلوت بکنه توی خونه زندگی بکنه بعد اون پسرش هم که به دنیا میاد اون دخترش بی پدر باشه امروز بالاخره این بوده باش حابیده فردا کسی دیگه آل اشکال نداره پدرش هر کسی بوده باشه با دهن فنام قابله باشه آزادی براش مهم نیست که اون فرزندی که به دنیا میاد خانواده داره نداره براش مهم نیست اون زمیر از بین رفته اون وجدان از بین رفته. فرزندی که به دنیا میاد بی پدر مادر باشه بی خانواده باشه بی کس و کار باشه فکر نمی کنه این قضیه فقط تو گوشش خوندن زن زندگی آزادی فقط اینش آرش. تو ذهنش بردن. با چهار تا انیمیشن و کارتون و با چهار تا رسانه های اجتماعی و فقط فریب خورده و شیفته غرب شده فکر میکنه این کارشون غربی ها این کارو کردن به نتیجه رسیدن پس کار درسته وهذه القاعدة الأثيرة عندهم الصلاة لهم أرستو وغيرهم من الفلاسفين قادة كم دار مقدمي كل قواعد قرار ميدان أسلأ وصولي عن قرار ميدان قادة أرستو بدقاء فلاسفين بيهتنين وبارتنين قادة رجال فدو دان قادة شك وتعديد حيث يقولون من أراد أن يشرع في المعارفة للهية فليلمح من قلبه جميع فليمحه في, في من قلبه من جميع العلوم والاعتقادات أجد كاسيم خال بخد بخضاب راسه قلب شو هاس هرجونه اعتقدوا از هرجونه شنخت إلهي قلب شو خالي بكونه وليسعى في إزالتها من قلبه بحسب ما قدره توجيه كميتونة قلب خضاب شو خالي بكونه از هرجونه دياناته اعتقادي وليشك في الأشياء ثم ليك لي بعقله وخياله ورأيه ولی شک کفیل اشییا در هر چیزی چک بکنه تو و یکفه عقل بعد به عقل خودش کفایت بکنه و خیال و به نظر دل نه دل خودش نگاه بکنه چی میخواد چی نمیخواد کاری نداره که دین و دیانتی وجود داره نداره. تو مکمل و هذا قانون به قانون آخر و هوا نسبیت بیا و حقیقه القوم صاند قوم حقیقت مطلقق سپس این قانون رو کامل کردم با قانون دیگر اون قانون نسبی حقیقی خلاصش به نتیجچین هیچ حقیقت مطلقی پیش اینا وجود نداره. هیچ حقیقتی پیش اینها وجود نداره این خلاصه بحث امشبمون ان شاء الله فردا شبم سعی میکنیم که ان شاء الله واضح باشیم با جلسه دیگر درس دیگر از درس بررسی کتاب الهاد دکتر صالح السندی سبحانك الله وبحمدك سبحان الله وبحمدك صلی الله علی, علی محمد و آله محمد